خانم زمانی به شما تبریک می گویم. در این نمایشگاه لباس های زیبایی به نمایش گذاشته اید. متشکرم، خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید. امیدوارم لباس های ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد. البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با مسلمان مناسب هستند. بله، در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. بله، اما قیمت این لباس ها خیلی گران است. حق با شماست، علت گرانی این لباس این است که پارچه مصرفیان ها نفیس است و سوزندوزی ها هم با دست انجام می شود. اما من در شهرهای ایران کمتر اینگونه لباس ها را دیدم. همینطور است، این ترهی جدید از پوشش محلی و مد روز است کار شما بسیار ارزشمند است فکر میکنید بتوانید این لباسها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ بله من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کردم و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم آیا خانوم های هم از آنها استقبال میکنند؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید، غالبا انسان ها به ویژه خانم ها لباس های پوشیده داشتند. بنابراین به نظر من، این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد.